صفحه دویست و هنوز شایعات زیاد بود و جاوید نمی دانست کدام به درستی نزدیک تر است. برخی می گفتند ملک آرا از ایران خارج شده، می گفتند به روسیه رفته یا از راه کرمانشاه به عراق فرار کرده، حتی روزنامه ها هم خبر و شایعه خروج ملک آرا را از کشور چاپ میکردند. جاوید میشنید که ممورین تمام خانه‌های دیگر ملک آرا را گشته بودند، مهروموم کرده بودند. خانه دوستان ملک آرا را می گشتند، حتی ریخته بودند، خانه میرزا از را هم گشته بودند. بعد شایعه بود که ملک آرا در خانههای اشراف دیگر مخفی شده است و جایش محکم است. رجال دیگر ارتباط و آشنایی خود را با ملک آرارا تکزیب همچنین شایع بود که ملک آرا در یکی از سفارتخانه هاست و او خودش این اخبار را پخش میکند تا پس از آنکه مردم خسته شدند و سر و صداها خوابید فرار کند بعد جاوید چیزهایی جسته و گریخته شنید که او را ترساند محرمانه از ثریا خانم شنید که ملک آرا گذرنامه دکتر کیومرث خان را به اسم خودش کرده بود و پیش خودش نگهدارا صدای پا از سوی حیات خلوت از سوی دالان می آمد. جاوید بلند شد نشست. بعد سایه ای را دید که جلوی اتاق او آمد. مانند کابوسی که ناگهان بیداری و حقیقت شده باشد. سایه ملک آرا بود و لحظه بعد اندام چاق و بزرگ و شنل پوشیده ملک آرا پیش آمد. ملک آرا در یک دست یک کیف سیاه بزرگ داشت، در دست دیگرش یک هفتیر بود. جاوید پاشد، از جایش پرید، آمد جلو و تنها چیزی که از دهان خشکش درآمد این بود که گفت تو؟ ملک آرا یک قدم جلوتر آمد، با بدبینی و با چیزی شبیه ترس که برای صورت ملک آرا تازگی داشت، به جاوید نگاه کرد. بعد به دور حیاط حیات و حتی توی اتاقها را نگاه کرد. پرسید، بقیه کجان؟ جاوید گفت، روی پشت بام خوابند. پرسید، کیها؟ جاوید گفت، فقط لیلا و شاهباجی. ملک آرا با صدای خفه حرف می زد. پرسید، توی اون حیات که کسی نیست؟ جاوید گفت، نه تمام درها را قفل و محرموم کردند. می دونم در باغ هم قفل و مهروموم شده، آنجا پاسپان گذاشتند، بعد با دقت به صورت ملک آرا و شنل خاکالود ملک آرا نگاه کرد و گفت، از، از راهی وارد شدید؟ ملک آرا گفت، از دیوار کوچه پشتی، چه شبی؟ بعد آمد جلو و گفت، گوش کن، و لوله هفتیرش را توی سوراخ یک گوش جاوید گذاشت. صدایش خوشک و ترسآور بود. اگر هرچه گفتم عمل کنی و راز نگهدار باشی، هرچی بخوای به تو میدم. وگرنه یک گلوله توی گیجگاهت خالی میکنم. میفهمی؟ جاوید گفت، بله. ملک آرا گفت، هرچی بخوای بهت میدم. جاوید گفت، من در این دنیا فقط یک چیز است که... ملک آرا تندی حرف او را قطع کرد و انگار که آماده باشد و همه چیز را بداند گفت. آبتی کچولوت رو میخوای میدونم میدونم اونجاش جاش محکمه پیش خودمه عکسش رو هم دارم که توی باغ با دوربین انداختم نشون میدم به موقعش جاش رو خودم بهت میگم کجاست پولم بهت میدم میری برش میداری هر جا میخوای میری به سلامت اما باید یکی دو شب به من کمک بکنی من به هیچ کس دیگه نمیتونم اعتماد بکنم یعنی کسی که ارزه تو رو داشته باشه جاوید مبهوت ایستاده بود نمیداند چقدر از حرفهای او را باور کند یا چه کار کند باز به او امید پیدا شدن افسانه را میدادند، چیزی که بدتر از سرابی توهی و شوم شده بود اما به هر حال اینجا امشب آخر خط بود ملک آرا تنها کسی بود که آخرین کلید این راز را می توانست داشته باشد و بیشک داشت که آمده بود و انتظار داشت جاوید به او کمک کند. او حتی پیش پسر یا دخترش نرفته بود، پیش جاوید آمده بود. داد میدانست دستش قوی است، چون ورق برندهاش افسانه بود و البته هفتیر هم توی دستش بود. گفت: چش. به شرط این که من خواهرم را هرچه زودتر پیدا کنم. ملک آرا گفت. میکنی، پیدا میکنی، خیلی چیزهای دیگه هم پیدا میکنی، من دیگه چی دارم، چی میخوام، من فقط نجات و بخشایش خدا رو میخوام، دیگه آخر عمرم شده، و فقط نمیخوام توی زندون و محبس بمیرم، دیگه دنیا عوض شده، دیگه زندگی ها عوض شده، روزگاری پدرتو در این خانه فوت کرد، متاسفم، اون موقع متاسف بودم، من ترسیدم، اون روزها همه جا حرفهای بدی پیشیده بود، و من ناراحت بودم بعد هم که تو اومدی وضع بدتر شد من نمیتونستم بذارم تو بدوی بری جانداردری و نظمی چیهای های نفهم رو بیاری در خونم میتونستم حالا هرچی بوده گذشته اما من جبران میکنم میفهمی منم دیگه سرم به سنگ خورده تو به من کمک کن من به تو خوبی میکنم من دیگه به خدا رسیدم بیا با من بیا کجا من باید برم توی زیرزمین اون حیات. کار دارم. جاوید خواهی نخواهی پذیرفت و با سر اشاره کرد و گفت: چشم. اگرچه چه نمی‌دانست ملک آرا چه نقشه‌ای داشت و دقیقا از او چه میخواست. دوید چراغ نفتی کوچک را از اتاقش برداشت و آمد. چراغ را جلوب های ملک آرا گرفت، رفتند. دنبال ملک آرا وارد دالان شد، پیش رفتند. هیکل بزرگ ملک آرا جلوی او میان تاریکی های دالان سیاه و دراز با کیف و هفتیر مانند یک قول کابوسناک دنیای تازهی بود که در میان خیال حرکت کند. وقتی به ته دالان رسیدند، ملک آرا به او گفت که چراغ را پایین تر بکشد و نورش را با دست پنهان کند. جاوید آنچنان کرد، وارد باغ متروک شدند، هر دو می‌دانستند پشت در باغ پاسبانی کشیک می‌دهد. پاورچین پاورچین باغ را تهی کردند. ملک آرا به سوی زیرزمین مطبخ قدیمی رفت. سر پله ها ملک آرا برگشت، خودش چراغ را از دست جاوید گرفت، کیف سیاه و سنگینش را به او داد، خودش جلو افتاد. قلب جاوید داشت می‌ایستاد. این همان جایی بود که در سالهای اخیر به او گفته بودند که پدر و مادرش را در خاک آن دفن می کرده بودند. آرنج ملک آرا را گرفت گفت آقا مجبوریم از این جای لعنتی برویم؟ ملک آرا گفت هیس آره آره راه بیفت. نه جایی که من میخوام ته این قسمت زیرزمینه پشت آبانبار بیا. نه راه بیافت احساساتی و شل نشو. اگه خواهرت رو میخوای، امشب موقع شلبازی نیست. جاوید گفت، نه، اینجا نه، جون بخور نترس، من اینجا پانه میگذارم. ملک آرا گفت، زود باش، راه دیگه ای نیست. آه خشمناکی از سینه کشید. ملک آرا با صدای خفه داد زد، یالا وقت تلف نکن، داره صبح میشه، اگه میخوای کمک کنی، دست او را گرفت و کشید. راه و چاره دیگری نبود، حرکت کرد و دنبال ملک آرا از پله ها پایین رفت. در تاریکی به مطبخ کهنه زد که پس از هفت سال سیاهتر و پوسیده‌تر شده بود، اما هنوز بوهای نم، لجن، مردار، پلیدی، دروغ و فریب در هوای قلیز سیاه موج میزد. زد. ملک آرا پیش رفت، جاوید هم دنبالش. از انباری ته مطبخ که پدر و مادرش در خاک بودند رد شدند. جاوید احساس می کرد اهریمنی های در پاهایش فرو می و چهار صفحه دویست و دو ته دهلیز انباری دریچه چهار گوش چوبی بزرگی به دیوار بود که به آبانبار باز می شد. ملک آرا جلوی این دریچه ایستاد. دریچه چوبی پوسیده را باز کرد، به درون آن سر کشید. چراغ را جلو برد و توی آبنبار را با دقت نگاه کرد. بعد برگشت چراغ را به دست جاوید داد که آن را نگه دارد. هفتیرش را در جیبش گذاشت. شنل خودش را درآورد به جاوید داد. شمشیر کوتاه در غلاف بسیار گرانبههایی را که به کمرش بود باز کرد به جاوید داد که آن را هم نگه دارد. اکنون خودش را مانند دوزی از دریچه بالا کشید و رفت بالای چهارچوب نشست. جاوید مات ایستاده بود او را نگاه میکرد. از لب دریچه ملک آرا چراغ و شمشیر را از جاوید گرفت به درون آبنبار دلا شد. شمشیر را با قلاف در آب ته آبنبار فرو برد. آب را اندازه گرفت. یک بد نیست گفت و ثانیه بعد با چکمه سیاهش به آبنبار داخل شد. جاوید هم سرک کشید. ملک آرا را چراغ به دست نگاه کرد. آب فقط تا وسط ساق پای ملک آرا بود. ملک آرا به انتهای آبنبار پیش می رفت. جاوید هنوز یک پسر ساده دهاتی بود و از تمام روحیات و افکار یک شاهزاده درباری و اشرافی آگاه نبود. مردی که هفت سال در این محله امپراتور عذاب او و کیاوبیای همه کس و همه چیز بود، امشب با یک شمشیر زرنگار و یک چراغ نفتی مثل علی برجه پریده بود توی آبنبار. ملک آرا پشت چند تا ستون سمنتی سیاه و خزه گرفته به دیوار انتهای آبنبار رسیده بود. از اینجا جاوید او را نمیدید شنی دنگار ملک آرا داشت با چیزی ور میرفت و فوش میداد. بعد ملک آرا او را صدا کرد بیاید توی آبنبار به او کمک کند. جاوید خرد و های ملک آرا را روی زمین گذاشت. خودش هم از دریچه که به اندازه یک متر و نیم دو متر گود بود زفت توب. او پا به بود و آب سرد تا زیر زانویش می رسی. آب مانده و بدبو شده بود. و کف پاهای جاوید در لجن ته آب فرو میرفت که مانند ریغ سردی از پاهایش بالا میآمد جلو رفت پشت ستونها ملک را دید که دستش به دیوار بود اول چیزی ندید بعد با دقت نگاه کرد. دریچه آهنی عجیبی آنجا بود که انگار به یک راه یا نقب سری یا به یک زیرزمین مخفی سرپوش میگذاشت دریچه آهنی که فقط به اندازه کمتر از یک متر از کف آبنبار بالاتر و از آهن تیره و زنگ زده بود، هم سطح و همرنگ دیوار ساخته شده بود. به همین دلیل بود که جاوید در ابتدا حتی از جلو هم متوجه آن نشده بود. حتی روی دریچه را هم ماهرانه به شکل آجرهای سیمانی بند شده، تراش داده بودند و هم شکل دیوار درآورده بودند. ملک آرا داشت با چاقویی که در یک دستش بود کوشش می کرد، لبه های دریچه آهنی زنگ خورده را باز کند و نمی جاوید را به کمک خواند. با کمک ناخنهای جاوید و چاقو و دست محکم ملک آرا دریچه آهنی بالاخره باز شد. پشت دریچه آهنی یک سرداب کوچک مخفی بود. ملک آرا فوری و به آسانی بالا کشید و وارد سرداب شد. پشت دریچه ستا پله میخورد پایین سرداب شبیه یک اتاق خالی بود ملک آرا وارد شد دلا دلا رفت وسط سرداب زیر سقف کوتاه ایستاد همه جا را نگاه کرد با رضایت اجباری سرش را تکان داد گفت این سرداب را داده بود موقع شلوغی دوره محمد علی شاه که مدام بگیر و به ببند و بکش بود ساخته بودند که اگر روزی تقوی به طوقی خورد، مدتی جای مخفی شدن داشته باشد، سرداب محقری بود، اما مجزا و تا حدی خوشگراهد، و, و در یک گوشه حتی شیر آب و دخمه مستراهی داشت، تخت آن خیلی کوتاه، اما کف آن با تخته و حسی خوشگ و خوب بود، کف این سرداب و بند و بسات را مرحوم اوسا کامران یکی از معمار باشیهای ناصر الدین شاه برای ملک آرا ساخته بود و جز او و یک بنای پیر که مرده بود و خود ملک آرا فقط بلوملی مرحوم از وجود این سرداب مخفی خبر داشتند که آنها همه از رفتگان بودند و حالا فقط جاوید می دانست. و این جایی بود که اکنون ملک آرا برای چند روزی پنهان شدن احتیاج داشت تا اوضاع داد، تا او وسیله زفتنش به خارج را مهیا کند. به دستور ملک آرا جاوید برگشت توی تاریکی از بیرون آبنبار کیف بسیار سنگین و شنل و شمشیر ملک آرا را برای او آورد. ملک آرا حالا سر یکی از سخته الوار پوسیده که گوشه ای افتاده بود نشسته بود فکر می کرد. به جاوید دستور داد داخل شود. درون سرداب ملک آرا به جاوید دستور داد کیف را وسط حسیر کف سرداب بگذارد در آن را باز کند. جاوید با دستهای لرزان کیف بزرگ را باز کرد. ملک آرا از او خواست محتویات کیف را نگاه کند. جاوید درون آن را بررسی کرد، هزارها تومان پولهای اسکناس ایرانی و خارجی از هر رنگ به هر قد و دریایی هم از سکه های ایرانی و روسی و انگلیسی ته کیف خابیده بود، مدالها، دستبندها، ساعتها و قوطی سیگارها و انفیدانهای طلا، انگشترها، گلوبندها و علنگوهای طلا با سنگهای قیمتی قسمت دکمدار کیف را چاق و باد کرده ساخته بود. گوشه دیگر کیف کمربند بزرگ و عجیبی بود که در لایه زیر آن نیست چندین و دیف طلا تلا و اسکنات های درشت خابیده بود. در دستمال کوچکتری سنگهای قیمتی تکی بود. دو تا خنجر با دسته های تلا و مرسع به سنگهای شگرف رنگارنگ نیز در دو گوشه کیف بود. مقدار زیادی هم اسناد و اوراق بهادار بود که به نظر می‌آمد کاغذهای بانکی یا اسناد دولتی باشند. گنجینه‌ای به ارزش میلیونها پول در هر کشور جهان بود. جوییت میتست هیچ حدی برای ارزش واقعی آنها قائل شود. ملک آرا این همه گنج را از کجا آورده بود؟ ثروت خانه ها و باغها و اساسه بینذیر ملک آرا پیش این گنج یک پول سیاه بود. ملک آرا پسرک را نگاه کرد که در مقابل این سرمایه و گنج خیر مانده بود. بعد دست توی جیب خودش کرد هفتیرش را درآورد. مدتی آن را جلوی جاوید نگه داشت، جاوید را صدا کرد که بیاید جلوتر، جاوید با ترس پیش رفت، آنگاه ملک آرا اسلحه را با یک حرکت توی دست جاوید گذاشت، گفت، بیا پسر، بگیر، جاوید شگفت زده اسلحه را گرفت، چشمهای گیجش به سوی ملک آرا خیره ماند، ملک آرا گفت، بزن، شلیک کن، مرا بکش، بله، یا مرا بزن بکش یا ببخش و قسم بخور به من کمک کنی اگر خواهرت را میخواهی باید به من کمک کنی من به آخر عمرم رسیدم. جاوید خشک جلوی او ایستاد ملک آرا نشسته منتظر تصمیم او شد. هفتیر به دست بالای سر قاتل پدر و مادر و دزد خواهرش ایستاده بود. سرش داغ بود درسهایش میلرزید. کاری که ناگزیر بود بکند و این همه سالها ناگزیر مانده بود، روشن و اشتناب ناپذیر بود. انگشتش را روی ماشه گذاشت، اما گفت، شما خوب می دانی پاسخ من چیست، وگرنه این آلت کشتن را در دست من نمی گذاشتید. حق و اراده با توست. خواهر من کجاست؟ قسم می خوری به من کمک کنی؟ انگشت او هنوز روی ماشه اسلحه بود گفت برای رهایی خواهرم ناگزیرم را به او نگاه کرد گفت من هرگز نفهمیدم که تو چه جونوری هستی و به چی ایمون و اعتقاد داری اما من هم قسم میخورم به دین و ایمون خودم قسم میخورم که روزی که خواستم برم دست خواهرت رو توی دستت بذارم جاوید به سادگی و سردی نخواستین چیزی را که به مغزش رسید به زبان آورد. من حرف شما را باور نمی کنم. ملک آرا چشمهای او را نگاه کرد. گفت پس بزن مرا بکش. جاوید گفت به من بگویید چه اتفاقی برای او افتاده؟ کجاست؟ ملک آرا سیبیلهایش را تاب داد. جاوید را نگاه کرد. گفت بالیلا هیچ وقت در این مورد حرف نزدی؟ جاوید پرسید لیلا در این مورد لیلا چه کار است؟ هیچی هیچی من بچه رو با ابو فرستادم به یکی از باغ‌ها که جلوی چشم نباشه چون میدونستم تو بی اون هیچ جا نمیری، هیچ کاری نمیکنی نه اینکه شماها همتون عین های خورشید به هم چسبیدین جاوید پرسید کدام باغ؟ باغ کن اما بعد جاش را چند دفعه گفتم عوض کردند که به آسونی پیدا نشه. جاوید گفت، حالا هم البته لابد من نباید بفهمم او کجاست. ملک آرا گفت، اینجا سرده، منم خستم. به قرآن قسم میخورم روزی که خواستم برم، دست خواهرت رو توی دستت بذارم. حرف مرد یکیه، دیگه خود دانی، یا قبول می کنی. یا الان تمام قائله را با کشیدن اون ماشه خط می کنی. جاوید میدانست حالا ملک آرا در چنگ اوست میداند او نمیتواند دروغ بگوید و زنده بماند آهی کشید و هفتیر را به او پس داد. گفت فقط پروردگار به داد شما برسد اگر این قسم دروغ باشد ملک آرا گفت دروغ نیست پسر دروغ نیست من دیگه انقدر ها نیستم برو یه چیزی بیار تو که نمیخوای من از سرما و خستگی سقط بشم را با او خیلی حرفهای دیگر هم زد و خیلی سفارش ها کرد، به او سیاهی داد از لوازم زندگی، از قبیل لحاف، تشک، منقل، زغال، قند، چای، خوراکی که برای او بیاورد، پول زیادی هم از جیبش درآورد و در مشت جاوید گذاشت، گفت هیچ کس نباید بفهمد که او اینجاست، هیچ کس، هیچ کس، حتی لیلا و شاهباجی، یا به خصوص پسرش و دخترش نباید بفهمند. او به هیچ کدام از آنها و به هیچ اعتماد نداشت. به چشمهای جاوید خیره شد و گفت فقط به تو میتونم اعتماد کنم چون میدونم هر دو به همدیگه احتیاج داریم. احتیاج مرگ و زندگی داریم. در این دوز و کلک زندگی هر دوی ما لب پل سرات ایست داده این. جاوید گفت شاید. ملک آرا گفت، آره، آره پسر، جاوید او را نگاه کرد و سرش را تکان داد. پنجاه و پنج، صفحه دیویست پنجاه و هفت ملک آرا را توی سرداب گذاشت، خود در تاریکی بیرون آمد. ملک آرا دریچه آهنی را پشت سر او بست. جاوید از میان آبنبار سرد و لجن گرفته و سیاهی قلیز و سیال حرکت کرد. کورمال کورمال از دریچه گذشت از انبار سیاه هم که روزگاری برای او و مادر و خواهرش دوزخی از همه رنجهای ابدی بود رد شد. در دل تاریکی مث احساس میکرد پیروزی نزدیک چنگ اوست. از پله ها هم بالا آمد از میان باغ ملک آرارد شد. دالان بین دوتا حیات را هم پیمود به حیات بیرونی برگشت. همه جا هنوز ساکت و شب مهدابی و گرم تابستانی آرام بود. او مقداری از چیزهایی را که ملک آرا خواسته بود تا آنجا که میشد از گوشه و کنار خانه و مطبخ بزرگ گردآوری کرد و در دو سه بار رفت آمد برایش برد. سایر چیزها را فردا به مرور برایش میخرید. ملک آرا با خودش قلیه وافور و مقدار زیادی هم تریاک آورده بود. با منقل آتش و اندک چای و شیرینی و خوراکی که جاوید آورده بود، اکنون می توانست تا فردا دوام بیاورد. قرار گذاشتند هر 24 و چهار ساعت شبها فقط یک بار درست سر ساعت ده شب جاوید بیاید. ملک آرا یکی از ساعتهای خود را به او داد. جاوید می بایست از بازار برای ملک آرا غذا بیاورد. از محله های مختلف عرق و تریاک تهیه کند روزنامه های یومیه را بیاورد. او را از اخبار و حال و اوضا و همه چیز باخبر کند قرار گذاشتند دریچه را از هر دو طرف ببندند در زمان معین با ضربه های معین دریچه را باز می کردند جاوید می تمام ساعات و هر لحظه مواظب هر دو تا حیات هیچ کس نباید به این حیات می آمد. وقتی آخرین سفارشات ملک آرا را هم انجام داد و دست آخر او را به حال خودش گذاشت و بیرون آمد شنید که ملک آرا دریچه را از داخل بست. با چراغ دیگری که آورده بود مدتی پشت دریچه توی آبنبار ایستاد و دریچه آهنی را از جلو به دقت نگاه کرد. ملک آرا راست گفته بود. دریچه از بیرون محکم لولا میخورد. لولاها زبانه های پهن و دراز آهنی بودند که از مرکز دریچه به چهار زاویه میرفتند و به آسانی به چشم نمیخوردند. در چهار زاویه مربع دریچه در امتداد چهار لولای نکدیز حلقه های ریز و ماهران به دیوار فرو رفته بود. دریچه هم از درون بسته میشد و هم از بیرون هم پناهگاه بود و هم زندان. جاوید هر چهار لولا را بست. با دل آسوده از آبانبار بیرون آمد. میان دهلیز زنباری در نقطه ای که مادرش گفته بود پدر او خاک شده است ایستاد. گور خود مادرش هم لابد همین نزدیکی ها بود. چراغ را روی گور پدرش نگه داشت. خیلی حرف داشت که با او بزند. اما امشب هنوز اقده گلو و زبانش باز نمیشد. اشکش هم در نمی آمد. چون لابد اشکی دیگر نمانده بود در تاریکی سرد دهلیز نیایش و فروته آشم و اهورا با ترس و بتوندی خواند و بیرون آمد میان باغ ایستاد سپیددم بود به آسمان پاک و روشن با تک و توک ستاره نگاه کرد نسیم خنک و ملایمی نیز میوزید، به روان پدر و به روان مادرش درود فرستاد به آنها به زبان دل خود گفت که زمان پیدا شدن افسانه و آرامش خیال و روح آنان نزدیک است. سوگند خورد که کارش را تا آخر به نیکی و پاکی انجام خواهد داد. پنجاه و شش صفحه دیویست سرانجام زمان درگیری و روبرویی او با ملک آرا فرا رسیده بود. بیدار ماند. و به همه گوشه ها و جوانه به سخنان و کارهای ملک آرا اندیشید. میدانست باید درست نقشه بریزد، استوار باشد. این بار کوشا و بسیار با دقت کار کند، راست پیش برود و به هدف برسد. ملک آرا آنجا توی آن سرداب در چفت و بست بود و هیچ کس جز جاوید که او را بسته بود نمیدانست. و ملک آرا گفته بود که میداند افسانه کجاست. دشمن در دست او بود این دیگر نمیتوانست توانست، فری فریب مزخرف ابوتراب شود رأی و اراده جاوید بر این شد که ملک آرا را از آنجا بیرون نیاورد تا روزی که افسانه زنده و سالم پیش خودش باشد نه زودتر و نه دیرتر روزی که ملک آرا از آن سرداب بیرون نیامد تازه روز اول جنگ بود آغاز مبارزه او و ملک آرا بود و او برای دشمن آماده بود. بخشیدن و خوبی کردن با بدکاران در فرهنگ جاوید نبود. به ویژه بخشیدن بدکاری چون ملک آرا. با ملک آرا کوچکترین ندیده گرفتن و بی اهمیتترین هم گناه جبران ناپذیر بود. اهریمن را نباید بخشید. به اهریمن مهر و دلسوزی نباید کرد و با